گفتگوهای با استاد نوشته پال تویچه برگردان از حوشنگ احرپور معرفی گفتگوهایی با استاد مجموعه ای از دیسکورس های است که توسط روازار تارس ای برای اکنکار در جهان امروز به من ابلاغ شد او عملا ظرف مدتی حدود یک سال شبانگاه در کالبد نورانیش بر من ظاهر می و آن را به من دیکته می کردم. این واقعه هنگامی رخ داد که من در پایتخت کشورم اقامت داشتم حدود یک ماه پیش از اولین شب ظهور وی من در هندوستان بودم در خلال این دیدار این افتخار نصیبم شد که او را در دارجیلینگ ملاقات کنم که شرح وقایع آن در کتاب معذفی نام ای بر اکنکار آمده است ربازارتارز در یک کلبه خشت و گلی کوچک در نقطه ای دوردست و وحشی در میان کوهستان های هندوکش نزدیک مرز کشمیر و افغانستان زندگی می کند او کالبد فیزیکیش را در آنجا می و در شکل نورانیش نوری ساروپ بر بسیاری از افرادی که با اک خط مشترک دارند در سراسر جهان ظاهر می شود می گویند هنگامی که کیرسوپ کلومب آمریکا را کشف کرد او مرد جوانی بود در حالی که امروزه به نظر کمی بیش از چهل ساله می آید گفتگوهایی که در این کتاب درج شده اند، تا آنجا که ممکن بود این است که او در ملاقاتهای شبانهش با من ادا کرد او در طی این دیدارها آموزشهای پیشرفته مرا در زمینه دانش پنهان کنکار کامل کرد در پایان این دور آموزشها بود که او مرا با خود به سفری در جهانهای معنوی برد که شرح آن در کتاب دندان ببر آمده است چگونگی برخود افراد مختلف با این گفتگوها بستگی به همتی دارد که در تناسخات گدششش در راستای آموزش های اک به خرج داده باشد داشتن یک استاد حق به عنوان گروه در زندگی یکی از بزرگترین ماجراهای های است. من بیش از حد استحقاقم مورد رحمت و برکت واقع شدم all to each other.